یکی دو هفته بعد از جابجایی ما یک روز سه شنبه بود که در خانهشان منتظر آمدن محمد بودم. سه ها معمولا زود می آمد دنبالم ولی آن روز دیر کرد. خیلی هم دیر کرد و من بیتاب و مشوش نمی توانستم آرام بگیرم. محترم خانم دلداریم میداد، ولی دل رهایم نمی کرد. تقریبا نزدیک غروب آمد. سر حال خوشحال در حالی که از قیافه درهم در همه من تعجب کرده بود. محترم خانم جای من توضیح داد. از ساعتی که اومده تا الان چشمش به در بوده. هم زنت پرپر پر زده، هم من دلم هزار راه رفته. خب مادر جون تلفون که هست، مگه شماره گرفتن چقدر کار داره؟ در حالی که محترم خانم را میبوسید و عصر خواهی میکرد، سر به سر من هم که اخمهایم باز نمیشد میگذاشت. توی ماشین هم با آن که از حرفهایش خنده میگرفت، سگرمه را باز نکردم. تا اینکه گفت، میخواستم یه خبری بهت بدم حالا که اخم میکنی نمیگم. درست روی نقط زف من دست گذاشته بود. در حالی که اخم و تخم به کلی فراموشم شده بود به التماس افتاده بودم که بگوید چه خبر است و حالا او بود که می خندید و به شوخی اخم کرده بود. در جوابم با لحنی بامزه گفت مجازات آدم اخم و انتظاره. التماس فایده نداره. این مرز که در مورد سؤالهایی که ذهنم را کنچکاو می کرد صبر نداشتم کلافه کرده بود. به تمام ترفندهایی که بلد بودم متوسل شدم. از ناز و عشوه و التماس گرفته تا قهر و دعوای ساختگی. ولی آخر هم نگفت تا رسیدیم. دم خانه با تهدید گفتم. نمیگی؟ مسمم و قلیز و کشیده گفت. نه. گفتم. خیلی خوب. و با عصبانیت پیاده شدم و در را محکم به هم زدم سرش را از شیشه بیرون آورد و پرسید خیلی خوب چی با لجبازی گفتم خیلی خوب حالا بهت میگم و زنگ را فشار دادم دنبالم آمد خندان و سر حال خندههایش بیشتر می میکرد با کج خلقی و عجله به مادر و امیر و علی که توی حال بودند سلام کردم و از پله‌ها بالا رفتم. امیر گفت: خوبه دیگه، حملیا رو ما میکنیم اخم و شد تو. بعد رو به محمد کرد و پرسید: اینم زن تو گرفتی؟ غیر از اخم اخ و تخم اخلاقی کار دیگم بلده؟ مادر به اعتراض گفت: امیر امیر گفت، مادر جان، ما که سر بچه مردمو مردم و کلا گذاشتیم، بزار اقلن خودمون بگیم دلش خونک بشه. چند تا پله برگشتم پایین و از بالای نرده ها دولا شدم و با کجی و حرس به امیر گفتم کلا سر اونی میره که زن تو بشه آقا، دلت به حال خودت بسوزه، نه دوست عزیزت. امیر با خنده گفت حالا اینقدر دلانشو افتی محمد یه بارت دستت راحت میشه ها بدون اینکه جواب بدهم عصبانی از پله‌ها بالا رفتم صدای امیر هنوز می‌آمد که جیغم بلند شد فریادی از شادی و تعجب و حیرت اتاق به کل شکل دیگری شده بود روبروی یک کتابخانه حسیری ظریف بود که کتابها را منظم و مرتب تویش چیده بودند و کنارش گلدان نخل مرداب و جلوی آن میز تحریر تخت مان زیر پنجره بود و کنارش یک آباجور قشنگ روشن بود مبل راحتی جای قبلی میز تحریر بود و یک دست گل بزرگ روز و مریم که فضای اتاق را پر از عطر گل مریم کرده بود روی میز قرار داشت درست مثل دست گل روز تولدم روز تولدم؟ امروز اول دی بود؟ وای پس تولدم بود و دیر کردن محمد برای این کارها بوده و منظور امیر از حمالی لابو جابجا جا کردن همین وسایل در حالی که از شادی روی پا بند نبودم با هیاهو سر و صدا از پله ها سرازیر شدم آنها هم به دنبال سر و صدای من توی پله های طبقه دوم آمده بودند. سه پله مانده به کفه حال نمیدانم پایم پیچ خورد یا لیز خورد. خلاصه قبل از اینکه بفهمم چه شده مثل توپ خوردم زمین. آنقدر سریع افتادم که حتی دردم نیامد. و از حرف امیر که به محمد می گفت بیچاره به جای این آتاشقال برای این گیجوف چشم به پاشو ببینه، من که هنوز زغزده اتاقم بودم از ته دل ریسه رفتم. خنده هم, هم از شادی بود و هم از حرف امیر و آن قدر شدید که نمی توانستم جواب مادر و محمد را که با نگرانی دست و پایم را تکان می دادند که نکند شکسته باشد بدهم. و رگبار متلک های بامزه امیر هم نمی گذاشت خنده بند بیاید. وقتی بالاخره نفسم بالا آمد در جواب مادر و محمد که میگفتند معلوم هواست کجاست گفتم: «به خدا نمیدونم چی شد؟ امیر در حالی که میرفت پایین رو به مادرم گفت: بفرمایین تازه شما میگینیم بنده خدا رو محمد را میگفت. دلداری ندیم. چهارتا پله رو نمیدونه چی شده؟ شانس آوردیم دم پشت بوم نبود. آن روز آنقدر خوشحال بودم که حرفای امیر ناراحتم که نمیکرد هیچ، تازه خودم بیشتر از همه می خندیدم. وقتی مادرم هم دنبال امیر از پله پایین رفت، بی با پریدم توی بغل محمد و با شور و شوق صورتش را غرق بوسه کردم. در حالی که به جای من او ناراحت بود که مبا صدای ما پایین برود و مدام میگفت هیس و سعی داشت آرامم کند. آخر هم وقتی دید حریف من نمی شود، بغلم کرد و از پله ها بردم بالا توی اتاق خودمان. اتاقی که اطره گل مریم و بوی عشق با هم معترش می کرد. اتاقی که می توانست اولین خانه خوشبختی ما باشد. و من نگذاشتم. هنوز هم وقتی یاد آن لحظه ها می افتم، دست هایم می و، چشمهایم پر از عشق می شود عشق ندامت عشق حسرت عشق افسوس افسوس برای بهشتی که از دست رفت و جهنمی جایگزینش شد که شعله هایش سالها روح و قلبم را سوزاند و خاکستر کرد ولی از حرارتش اندکی کاسته نشد. کتابخانه اش هنوز هم توی اتاقم است و آبژورش کنار تختم. آبژوری که کلاهکی سفید بر روی پایه از گلدان چینی داشت که رویش نقاشی بسیار لطیف و کم رنگی کشیده بودند. نقاشی با رنگ ملایم مثل رویا و درست همانطور هم اتاق را روشن میکرد. نوری ضعیف و ملایم. مثل رویا. و باز مثل سال قبل یک جعبه کوچک که این بار گل گلها بود. حتی انتخاب هدیه هایش هم زرافتی خواست داشت. توی آن جعبه دوتا حلقه بود جدا از هم. یکی حلقه ای مات و براق که به نظر نقره طلایی میآمد و دیگری حلقه ای که روی انگشت هفت میشد و پر از نگین های ریز بود. و دوتایی توی دست یک انگشتری ظریف و زیبا می شد. به پیشنهاد محمد حلقه ساده را پشت انگشتر نام زدیم و حلقه دیگر را جلوی آن دستم کردم. با اینکه سه تا حلقه بود به خاطر زرافت هر سه شان توی دست مثل یک انگشتر پهن زیبا می شدند. از نگاه کردن به انگوشت سیر نمی شدم. من صورت او را میبوسیدم و او دست مرا که میگفت مثل دست بچه هاست. و نرم و سفید. نمیدانم چه مدت گذشته بود که صدای امیر که از پایین صدایمان من میزد ما را به خودمان آورد. حلقه اش هنوز به دستم است. مثل گردم بندش که همیشه به گردن دارم. وقتی رفت نه او حلقه اش را پس داد. نه من یادگاری هایش را و هیچ کس هم سؤالی نکرد و من هیچ وقت نفهمیدم که او حلقه را مثل من پیش خودش نگه داشت یا نه همان شب محمد گفت از این جمعه به بعد با هم میریم کوه و سه روز بعد بالاخره با اکراه و بیمیلی برای اولین بار همراه امیر و محمد به کوه رفتم ساعت پنج و صبح بود که محمد با هزار زحمت بیدارم کرد. من آنقدر خوابآلود بودم و پلکهایم سنگین بود که به زحمت میتوانستم از لایه چشم ها نگاه کنم. در حالی که با حسرت رخت خواب گرم را نگاه میکردم و برخلاف محمد و امیر با تنبلی حاضر می شدم با خود گفتم چه کار بیهوده و مسخره است که آدم صبح زود آن هم روز تعطیل از رخت خواب گرم و خواب جدا بشود. و راه بیفتد و برود کوه اصلا هیچ آدم عاقلی توی این سرما و این موقع صبح ممکن است الان بیرون باشد چشمهایم آنقدر میسوخت که با وجود شوخی و خنده های امیر و محمد توی ماشین باز هم خوابم برد وقتی رسیدیم هوا تاریک و روشن بود از دیدن آن همه آدم از پیر و جوان و حتی بچه که تنها یا دست دسته به کوه آمده بودند بهتم زد و فکر کردم پس فقط عقل محمد و امیر کم نیست روحیه شاد و سرحال اکثریت آدم که میدیدم از هر چیز دیگری عجیب تر بود هیچ نشانی از خواب آلودگی و اکراه در صورت کسی نبود انگار به جای همه آن آدم ها من بودم که ازا گرفته بودم امیر به شوخی گفت مهمه الان همه میفهمن زنت از اون کوه نوردای قهاره که اگه سرش بره کوهش نمیره ها؟ و در جواب نگاه پر از غیز من خندان گفت <تصفيق> باورت نمیشه به جان خودم قیافت از سه فرسخی نشون میده با چه عشقی اومدی از این منظره و هوا و طبیعت استفاده کنی بعد قاه قاه خندید محمد به طرف از من گفت انگار دفعای اول خودمون رو یادت نیست امیر پرید وسط حرفش والا اگه این مسئل که میگن سالی که نکوس از بهارش پیداست درست باشه اون وقت محمد جان برات متاسفم بی خودی به دلت صابون نزد صدای جواد که میگفت امیر دوباره چه خبره صبح اول صبح معرکه که گرفتی حرف امیر را قطع کرد و چشممان به آنها افتاد جواد و سریا که سر حال و قبراخ به ما نزدیک میشدند نمیدانم آن روزها واقعا چه مرگم بود چطور آن صبحهای با تراوت و سرزدن آفتاب را از دامنهٔ کوه نمیدیدم در حالی که تمیزی و پاکی هوا روح را تازه میکرد و رود جاری آدمها با روی گشاده پیچ و خمها را طی میکرد با اینکه هوا سرد بود کمی که راه رفتیم نور خورشید که کاملا طلو کرده بود و تلاش و فعالیت که به خاطر سربالا بودن راه برای من سخت بود باعث شد گرمم بشود کاپشنم را درآوردم که صدای محمد از پشت سرم بلند شد مهنا زود باش تو بپوش چرا گرممه میدونم ولی قبل از اینکه عرق کنی باید این کارو میکردی. نه حالا الاسه سرما میخوری؟ از گرما کلافه شدم. در حالی که کمکم میکرد گفت تنت کن یه جا میشینیم برای سبونه عرقت که خوش شد درش بیاد. وقتی به قهوه رسیدیم با اینکه آرام آرام راه آمده بودیم پاهایم ضعف میرفت و کاملا خسته شده بودم و از دیدن تخت و جایی برای نشستن کلی زوخ کردم. سورایا طوری که انگار حال مرا درک می کند گفت خیلی خسته شدی نه؟ توی نگاهش مهربانی خاصی بود یک مهر مخلوط با حمایت که آدم قادر نبود در برابرش مقاومت کند با لبخند جواب دادم خیلی دفعه اول همیشه همینطوره ایشاله کم کم عادت می کنی محمد و امیر و جواد که برای آوردن چای و وسایل صبحانه رفته بودند سر رسیدند و امیر دنباله حرفهای سرعیه را گرفت. بله دیگه وقتی دورترین مسیری که آدم پیاده روی کرده باشه مسیر خونه تا مدرسه یا خونه مریم خانون باشه اوضا بهتر از این نمیشه. به جان خودم الان مهنوس فکر میکنه قله رو فت کرده مگه نه؟ به جای من که با دلخوری نگاه میکردم سرعیه گفت اگه این فکر رو هم کرده باشه همچین اشتباه نکرده، مثل اینکه خودتون رو یادتون رفته. همینقدر که این مسیر و پا به پای ما اومده آفرین داره. بعد رو به من اضافه کرد. کرد:مهلوز جون به حرف آقایون گوش نده، نصف بیشتر اعتماد به نفسش این رو از ضعیف دونستن خانوما تأمین میکنن. جواد در حالی که لقمهای بزرگ را نزدیک دهانش نگه داشته بود گفت. امیر، تو نمیتونی خفشی؟ حالا دوباره از صبح جنگ حقوق زنان در میگیره. هر دفعه این غلط رو میکنی نتیجه هم میبینی. بازم از رو نرو. خب؟ امیر خندان گفت. هیچم بی نتیجه نبوده. همین ادامه جنگ نشون میده که هنوز حقانیت قضیه اثبات نشده. بعد در حالی که به سمت یا اشاره میکرد ادامه داد. و بعضی ها نتونستم پیروز بشن محمد همونطور که چای میریخت توی گوش من که محو تماشای اون ستا بودم گفت صبونتو بخور اینا کار همیشه شونه آروم آروم عادت میکنی جا خوردم و با تعجب فکر کردم یعنی همیشه سورهیا هم همراهشان بوده؟ پس چرا تا حالا هیچ وقت به من حرفی نزدند؟ بی اختیار فکرم مشوش شد و چیزی درونم آتش گرفت و یک حس آزاردهنده با شدت توی وجودم بیدار شد. حسی مهار نشدنی و ناشناس که در عین تلخی باعث خشمی سرکش می شد ولی وقت آن نبود که خشمی را که توی دلم بود بروز بدهم. همین باعث می شد ای که روی افکارم افتاده بود ناخداگاه روی صورتم اثر بگذارد. صدای محمد مرا از آن حال درآورد. حالا اگه بخوای میتونی کاپشن تو در بیاری سرعیا پیشنهاد کرد به خاطر مهنز جون این دفعه تا جای همیشگی نریم ولی محمد گفت نه شماها که میتونین برین. ما آرومتر میاییم و هر جا دیگه مهنز نتونست میشینیم و منتظر شماها میشیم. همه قبول کردند و راه افتادند و من با ناراحتی از اینکه دوباره باید راه میرفتم، کیف کیفوکاکشنم را برداشتم و با اوقات تلخ راه افتادم. امیر در حالی که نگاهش به جواد بود ولی شیطنت در چشمانش موج میزد و معلوم بود منظورش به سریاست گفت: جواد میگم چطور از اینجا تا قهوه خونه بعدی مسابقه بدیم ببینیم بالاخره این احساس قدرت ما به حق هست یا نه؟ سریا هم در جواب با خنده از من پرسید. میدونی چیزی که در آقایون خیلی قابل تحسین چیه؟ امیر فوری گفت. معلومه، گذشت و قدرتشون. سریا با خنده این معنی دار گفت. نه، اشتباه کردین. روشونه که همتا نداره. و همونطور بحثکنان از ما دور شدند و رفتند. محمد به من که حاج و واج نگاهشان می کردم گفت. تعجب کردی؟ گفتم که اینا همیشه همینطورن. هم. حالا تا برگردن همینجور توی سر و هم می زنن. بیا بریم. چیزی نگفتم. باریکی راه و آدم هایی که زنجیروار کنار ما حرکت می کردند با اسم شد وقتی برای حرف زدن نباشد. این سکوت مرا بیشتر توی دنیای افکار مزخرفی که به سرم راه پیدا کرده بود اوتور میکرد. دیگر چیزی از طبیعت اطراف نمیدیدم. این که چرا در این همه مدت محمد هیچ وقت اشاره‌ای به این نکرده که سر هم همراه آنها بوده رهایم نمیکرد. آن روز وقتی به این افکار مزاهم میدان دادم اولین قهر و اختلاف جدی ما پیش آمد انگار زبانم قفل شده بود. بقیه روز را در جواب حرفهای محمد و دیگران به یک بله و نه اکتفا کردم و وقتی هم نزدیک ظهر برگشتیم خانه در جواب سوالهای او فقط با اخم‌های درهم گفتم خسته و بدون خوردن ناهار خوابیدم. نزدیک غروب بود که چشم باز کردم. از نور چراغ مطالعه فهمیدم که محمد پشت میز است. قلز زدم و پشت به او رو به دیوار دراز کشیدم. با لحنی دلخور گفت شبه خیال نداری بلند جواب ندادم. کتابش را محکم بست و آمد پشت سرم و روی لبه تخت نشست. با صدایی که معلوم بود سعی می کند عصبی بودنش را پنهان کند گفت بلند شبات کار دارم. نشستم در حالی که بی بودم و بدون اینکه سرم را بلند کنم با ناخونهایم ور میرفتم. خیلی شمرده گفت: خستگیت رفع شده؟ با سر جواب مثبت دادم. حالا میشه بگی این رفتار را به خاطر چیه؟ کمی نگاهش کردم و بعد در سکوت با سرم را پایین انداختم. هم دلم میخواست بگویم هم نمیخواست. فکر میکردم اینکه که به خاطر سوره یا دلیل ضعف و حسودی است و نمیخواستم او چنین فکری در مورد من با و میخواستم بگویم چون این فکر مثل چکش مغزم را سوراخ سراخ میکرد که چرا به من چیزی در این مورد نگفته است. سر در گم بودم و نمیدانستم باید چه کار کنم. که صدای تقریبا بلند محمد با لحن تهدیدآمیزش باعث شد تصمیمم رو بگیرم با لحنی که رگه های خشم داشت گفت ببین این بار آخره که دارم میپرسم میگی چی شده یا نه لحن خشمگین و تهدیدآمیزش مرا که خودم را طلبکار می دانستم سر لجن بدون اینکه حرف بزنم با موهایم که روی شان امریخته بود خودم را سرگرم کردم و او هم عصبانی برگشت پشت میز. من هم خواستم با عصبانیت از تخت بیایم با اینکه از درد ماهیچه های پایم ناله ام بلند شد. پاهایم چه دردی میکرد. محمد برخلاف همیشه نه نگاه هم کرد نه سؤال و این مرا در لجبازی مسمم تر کرد. دیگر تا آخر شب و موقع خواب حتی یک کلمه هم بین ما رد و بدل نشد و برای اولین بار شب به حالت قهر خوابیدیم پشتم را به او کرده بودم ولی مثل مرغ سرکنده زجر میکشیدم و او هم برای اولین بار حتی یک ذر ملایمت نشان نداد نمیدانم چقدر از شب گذشته بود که خوابم برد کنار او و دور از آغوشش پرپر میزدم و درد می‌کشیدم تا اینکه از خستگی از هوش رفتم و صبح با صدای زربه هایی که به در می خورد از خواب پریدم مهناز مهناز پاشو دیرت شد امیر منتظره با تعجب از جا پریدم چرا امیر به کنارم نگاه کردم رفته بود محمد نبود بحشتی گنگ به دلم چنگ انداخت. کی رفته بود؟ چی شده که امیر میخواهد مرا ببرد؟ نکنه برنگرده نگرده؟ استرابی خفقان آور ذهن و وجودم را در خودش پیچاند و آن روز تا به من چه گذشت. سر کلاس منگ و آشفته بودم و چیزی از درس نفهمیدم. درد ماهیچه های پاهایم انگار دو برابر شده بود. و من در دل دلهره عجیب گرفتار بودم و در عین حال پشیمانی از عملم داشت دیو ام میکرد. انگار چند ماه بود که از او دور بودم. دلم برایش پر میزد و غرق بیم و امید فقط منتظر غروب بودم. ساعتها به کندی میگذشت انگار آن روز خورشید خیال نداشت غروب کند. نزدیک غروب از استراب داشتم خفه می شدم. اگه شب نیاد چی؟ وقتی ساعت معمول آمدنش رسید، نفسم داشت بند می آمد. قرار و آرام نداشتم. برای اینکه مادرم و سایرین پی به احوالم نورند، خود را توی اتاق حفس کردم، ولی نیامد. پدرم آمد، امیر برگشت، ولی از محمد خبری نبود. حتی تلفن هم نزد. مثل دیوانه ها از این طرف به آن طرف میرفتم و دست به دست میمالیدم حتی برای سلام کردن به پدرم هم پایین نرفتم صدای مادر که از پایین صدایم میزد مجبورم کرد جواب بدهم مهناز محمد کی میاد آقاجونت شام میخوان چرا نمیای پایین دلم فرو ریخت چه باید میگفتم محمد جزئی از وجودم شده بود و بدون او سردرگم و گیج و درماننده شما شام, شام بخورید منم درس دارم بعدا با محمد شام میخورم. پدرم از پایین گفت: «یعنی دیگه تو اندازه یه سلام هم برای ما وقت نداری شرمنده رفتم پایین و سلام کردم و از خواهی و بعد مستصل دوباره به بهانه درس به اتاقم پناه بردم. نفسم از قصه انگار دیگر بالا نمیامد و نمیدانستم باید چه کار کنم. وحشت داشت قلبم را سوراخ میکرد. اگه برنگرده، اگه شب نیاد، بدون اون. صدای زنگ در مثل ناقوس خوشبختی از جا پراندم. تا نیمه پله ها دویدم و از بالای نرده ها دولا شدم. خودش بود. چهره اش چقدر خسته بود؟ در جواب مادرم با روی گشاده توضیح میداد که چرا دیر آمده و من که از حیجان درست نمیشنیدم همه وجودم نگاه شده بود. پدرم گفت پس بابا زود باش لباس تو عوض کن بیا که مردیم از گروس نگی. امیر طبق معمول خندان گفت زنتم از بس خوابیده خسته است. تازگیه زرنگ شده دیگه صاف و ساده نمیگه خواب بودم میگه درس دارم صداش کن بیاد میخوایم شام بخوری دوان دوان از پله ها بالا رفتم و در حالی که نفسم از دویدن و شوق به شماره افتاده بود به دیوار پشت در تکیه دادم صدای ضربان قلب داشت گوشم را کر میکرد که با سری زیر وارد شد در را بستم و بدون لحظه درنگ از گردنش آویختم. از دیروز تا آن ساعت مثل یک سال گذشته بود و احساس میکردم مدتهاست از او دورم. بدون اینکه حرفی بزنم در حالی که از نگاه غمگین و خسته چشمهایش دیوانه شده بودم مثل بچه ها فقط میخواستم خودم را توی بغلش قایم کنم. انگار می خواستم از وجودش مطمئن بشم. خدایا چقدر این ها و این وجود برایم عزیز بود چطور توانسته بودم برنجانمش یا آزارش بدهم هیچ حرفی بینمان رد و بدل نشد تنها لبخند شیرین او بود که باصمی شد آرامش به قلبم برگردد با صدای امیر که از پایین با بی صبری و طعنه می گفت محمد رفتی اونو بیاری خودتم هم خوابت برد از آغوشش بیرون آمدم در حالی که احساس می کردم باری به سنگینی همه دنیا از شانه برداشته شد. ولی افسوس که این اولین بار آخرین بار نبود. بلکه آغاز اختلافاتی بود که مثل آتشی که از یک جرق شروع بشود گسترش پیدا کرد و خرمان هستیم را به آتش کشید. کاش آن شب در جواب اصرارهای محمد علت ناراحتیم را گفته بودم. و سر و ته قضیه را با شوخی به هم نمی آوردم تا قضیه اساسی حل می شد. ولی اشتباه کردم خشت اول را کج گذاشتم این بود که دیوار تا یا کج رفت آن شب گذشت و آرامش ما فقط تا جمعه بعد طول کشید